اعوذ بالله الله الحمد لله رب الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و ذئون العابدین اجمعین اللهم یا ارحم الراحمین شد که به بحث سهر و متعلقات سهر فعلا بنا بود که این ارزا روایات وارد در مقام رو بخونیم چه خوب این ارزا روش کنیدید از در ما و تا اینجایی که ما خوندیم تقریبا روالیاتی که در باب به اصطلاح کازم آمده این هم مرد تکر و جمعون دوتره و سندش قابضه بود راجع به سه خیلی همیشین بگیم روایت خیلی تامی سندن و متنن باشه نه وقت برای توضیح بیشتر روایات یک مقداری هم از کلمات آمه رو متعرض میشیم برای آشنا شدن با این نه به ای کار اکثرون از این اعمال سنن مواصف روایت سحر و رؤیه و این دو سه مسئله رو در کتاب طب آوردن من جمله از اون‌ها خود حبیب بخاری بخاری این روایت در باب طب ذکر کرد اون وقت من برای معجز نکاح من نهارش می کنم بخاری داره باب س بعد گفته به قرد تعالی و قرد الله تعالی و قرد الله تعالی و لاکنه که در عباب همیشه نه ربایات و آیات را اول میاره خواهد ازایی مبارکه اثبات کفر و قول رو تعالی و لا یفله و صاحبه و حیث که در درد رویات ما همین این ها و استظهار بود و قرد رو تعالی افتعتون از سه و انتون توسرون و قول تعالی و قول رو تعالی یو خیلی علیه من صحره انها تس و قول رو تعالی من شر نفاسات از سواه نفاسات مرای جنبه های جنبه بعد ایشون روایاتی رو که در مقام نقل کرده به سند از آیشه روایتی که مربوط به سهب پیرانبره زیاد نقلن شده احتمالاً که از الهل شکال در وقتم همین باشه در این کتبه معروف احل سنت راویش آیشه از میشته میده سهر رجل منبنی زوره یقال لهو نبید ابن احسن حتی کان رسولا یو خلیلو علیه این نهو کانیه فراشی ها ما خرده البته اجمالا احل سنت خیلی سعیقه رسول الله رو بشر عادی جلوه بدن و همین حالاتی که بشر عادی سهر میشه مثلا شیالاتی شده اوهانش بردارش مثلا که چیسته من قضا خوردن نخوردون و قضا نخوردن خوردون مثلا همون نرجل مثلا شبیه حالات اونجوری این و... یک شرحی روایت بزاده که چون هم اشاره کردیم دیگه نمیخوام اینجا بخونیم چون طولانی و هر حس به شب پیش من بود که اش میکنه بعد دو نفر پیش من اینکه پایین افت، یعنی حالش می‌خواد یه خیلی خیالاتش وارد شد یه خیلی اوهام بود. حالا این قسمت اش رو ما الان که ذهنم نیست. اما این قسمتش اینطوره. تا وقتی که اون فعن اما این تعبیه که پیراوندر میگن اون دونا پیش من بودن، یکی پیش پای من بوده که این چیه ما و جعر و جل چیه فقال تبه با سهره در لغت یک معنی گرفتن خود تب هم است استبعا سهر با سهری قال من تبه بودم تب در اینجا و معنی سهره نه سهر. قال لبید ابن الاحسن یعنی دو نفرانه این تو گفتن قال فی اگشه بعد از احادیث آیشه از خیلی متن ادبی سنگینیه خیلی الفاظه قالتی مشک و مشاته مشک شانه است مشاته بعده که انسان سرش رو میکنه مثلا موهایی که میگیزه بشه یعنی میگرد یعنی که انما سر پیغمبر یا یکیستیگی یه زن صاحری زن سرش شانه کرده موها رو جمع کرده با خود اون شانه و جفت تلعت نخل، نخلت نوکن جفت تلع به اصطلاح با این با تا تا اون مال گل درخت اون چیزی که ما درخت انا میوناهیم خورما میشه اصطلاح اون فوستش رو جفت میگن تلع که اون خودش نخلت خورمای به اصطلاح نه چون خورما نرماده داره قال این حبه یکی اونی که کجا هست این سری که انجام داده قال فی بهر زروان اینجا زروان چاپ شده اما زفت کلمه فوقر آدم مختلفه عروان و زروان و زروان خیلی اینجا در حاشش پفستن بعدم چی جوری خونده بشه این خیلی فی بهر وی عروان بله فی عروان خیلی و بله. این یک ای قبیلهی بودن در مدینه به نام قدیل زوره خشیری از این در اونجا بود چایی بود که در اونجا بود من صابرم ارز کردم چون مدینه شهر نصداد خوش آبی بود نسبت به مکه چای زیاد داشت به خاطر همون کوه اوهند و, و کوه های که ها از مدینه الان هم هستن چون همیشه هم از کن در زندگی بشر. تمدن های بشری یا نزدیک بودخانه ساخته شده چشمها یا نزدیک ها و چشمه ها یا نزدیک دریا یا زیر کوه ها چون کوه ها همیشه منبع آم آب آورو نگه میدارن یه روایت هم داره که پینامی کنون اوهد امونه ها مثل مادر ما هست اون وقت تبل اوصافی که از شاه های مدینه شده متر پند متر و آب میاسیدن خیلی شاه های آبی بود این اینگری رو مامانین آب میکشیدن برای این ضرشون هیچ چه کوتاه بودنسی چه ما دیگه نیست اشتباه شهید اصلا با طنا 56 ممثل خیلی مشکل نیست آب کشیدن خیلی نیست من چند سال پیش که مکز به آ اهل مدینه بود با هم آشنا شده بود میگه گفت ال اگه میخواز آب خود و سر پ به بازدرکن با دستگاه با با سر تو مدینه تا به آب برسن به حال در اون زمان پنجویت و شیشمه و جایی پر بود به این جرد اصلا مدینه به خلاف مکه با اینکه مکه مکه در به در دریا بود بلحاظ دریا اما بلحاظ این که زمین سنگ, سنگ بود و وازن غیر زیزن چیز نداشته این منابع آبی نداشته الا همین چشمه زمزم که این چشمه منحضبه فردون که زیر ابو خوبه بود همین ابو خوبه سکشت که این زیر بود این خودش چشمه بوده احتیاج به درد نداشت اولاً بود بعد بسته شد زمان حضرت اسماعی یعنی زمان اهل اسماعی و ابراهیم را افتاد حضرت اسماعی بعدها قاضی این مخفی شدن به مدره از عبدالمنطلق زمزن رو راه نداخت که تقریبا آقا به مکه از همین زمزن بود چرا که جبونم در دارشه قدیم یک فواجی نوشتن فیکس نمی‌کنن علمی ثابت باشه چون الان اصطلاحا یعنی آب رو در اصطلاح امروز سفر کالری میذارن یعنی صفر کالری نداره یعنی نیرویی نداره میگن آب زمزم استثنا شده نیروزا هم هست یه شریدار شو که میگن حالا قضیه بحثا بشه نمیذارم صحت و صقم این بحثا رو به اینی چطوریه ادعاشون اینه که آب زمزم اختصاصی اینطور بر هر حال طبعا آب زمزم کافی نبود بعدها در زمان هارون یک نهر آبی رو از تائف کشیدند. امام زن هارون زبیده که معروفه به به اسم نهر زبیده، نهر زبیده این بود. از طائف کشیده بودند تا مکه آب می‌آورد. به اسمش تیووی کارند کشند. بهلا آب اساس اما مدینه آب زیاد داشت. هم خود مدینه آب زیاد داشت هم اطرافش یک قایقه از یهود بودن که به لحاظ کشااری خیلی کوچیکو میگن چندشوルダー گفتم عايزين یهو دار یه طلا بوده نشینن فرانکای بانکی بوده که امروز میگن ربا میگرفتن میذیدن ربا میگرفتن اصولن احتمالاً کلمه چیکوز چیکوست که چک فارسی باشه از یک کلمه ادری باشه یا حالا شبیه ادری که در غیر توجیا یهود می نوشتند اخلاص می‌رفتن پول پیشون می‌ذاشتن ورقه می‌شینزت که شما در پیشون پول داری اون ورقه چی پوز میگه؟ یک زبکی هم نیست چون ها دیدن بعد میرفت نصلا یه ورقه بشنه که از کلوز بردان همین چیکی که این ما داریم این کلوز سال چارصد یعنی چارصد میلادی بیشت سال تقریبا قبل از اسلام بوده یکی از کارهای اساسی یهود هم همین بوده هم یهود هم نسالا نسالا که در مزید نبود خیلی هم محتمل که خیلی ماهر در کشاورزی و درخت و قسط درخت یک شرک در کارو اینجا نیست بعد چیبر هم اینطور بود چندین حلیقه رو درست کردن شما آفر بود کشاورزی بسیار خوبی اونجا داده هم ترد چیبر و ادهات دیگره که بود یک شرک داده فرادان که به ماکان اگر آزان حتی بخون اسماع چاه های مدینه هم زرق شده چند تا چاپ بوده چند متوده کتاب اسم نان الوفا الوفا و اخبار مدینه مصطفی چاپ شده چارجه ده. یک فصل شاجید به آوار مدینه تمام روی ایک ایک یکی یکی به نظر من ایشون مدینه همچین وجب به وجب طولیق داره چون یک جمعیه با دست اندازیه در محصول نویر تا این محصول تا زباب تا اونجا با دست با با نتو کرده چارزارو خورده اگرچه از چیزها هم الان اونطوری ممکن اشتباه کرده باشم مقدارش. البته اینکه که نه آوار رو داره. اگر آوار بخواد در اونجا وفرست این اقسام چهار تا و توضیحات یکی دو تا از چهار در مدینه هست که محل آثار یعنی یک چانش خیلی محل آثار و دلت ازائر لا این چاही میده که چون در روایات ما هم مسئله کن رو به او ارجاع دادن که به پیغمبر گفتن تو این چاق مثلا اشخال اشخال حتی لکه که قابشایی که خانمالای حضب کار برن ای میشه ایمان پیغمبر ها اشخال ندارد وقتی نامدن گفتن که چون اندازه چاق مطرحه اون مقدار آب معتصم اون که در چاق باشه این چون این نهبه که حالا کم شنیدیم داری اینجا عرض کردن تا تا سال 200 خورده از اهل سنت رفتن م بیننه اصل این رو اندازه گیری کردن تو باقی بوده نوشتن که اونجا از با اجازه گرفتیم این به رو این یکی ای از معیر باب کور بوده چون, چون تو ما هم آمده و اهل سنت آده اونش توجه نشده خیلی. البته اون چیزی که اینو اوقا نوشته که پنج تا ک مازی که اون آقا نوید من بوده حش به عرضز شاه بوده یعنی خود رو بوده. فیشتو میکنم اشتباه کرده باشه اون نباز اون شا. اون مزار کار باشه اون چند تا تا کنه من حاله من بعضی از عباراتی رو که در اینجا مقلقه میکنم که انماعه من پیغمبر کنم یا آئشه که انماعه ها نقاعتل بله بله که انماعه ها نقاعتل حنا یا حنا نقاعت به اون خباب هایی که روی برسیم نقایه مثل رنگی سهنه پیدا میکنه چونه؟ آب چامل صاف نبود که انماها نقاعت و حنا حنات به اون سهنه نبود بخواستی زبطش هم بعد, بعد آخرش هم داره که پیغمبر فرمون تعمره البته در اینجا این متن همین مبذاره باز ایشون یه دیگری خود به اصطلاح جناب آقای بخاری متن دیگری داره بازم به آیشه اون مفصله در اون جانده این در این مفتن دوبارم که در این جلد سر جلد ده فخوای صفحه سالنا نام اون که دو صفحه فرده فقال قال مصبوبون و و قال لویزت ابن اکثررگگ رو من بنیزوره ظره لیهود که از خلافای یهود بودن و کان منافند قال و فیمه قال فی مشت و مشادهقال فی ای قال درفت به طرت ذکر سخته اینجا ر داره را ل عین و, و, و, و, و لام در چه لتاار مدربه اولا رؤوفه و راء این اینکه در ابتدای این در اون متن قبلی نموند کلمه رؤوفه نه چون من خودم برای این که متونش راؤفه میگن ظرف بیشترش مشخصهش راؤفه هست تو این متن رافعه هست نه اینکه اون متن اصلا این کلا کلمه ای رؤوفه رو نداره اون وقت را... راوخ عبارت از سنگ بزرگی بوده که لب شاه میگذاشتن که افکار میکنن آب بکشن و رو بیستن تکن نخواه این راوخه میدن سنگ بزرگی یک سنگ بزرگی یک سنگ بیستن لب شاه, شاه بشونی ایستن این سنگ را اوفه میگن من حالا این که نداره اما بعض از حادیث آیشه هست واقعا مثل کتاب مقامات هر یک متن عذبی بسیار چنگی نیم این حدیث اون که داره خیلی واقعا چیز قریبی هستم کلمه کلمهش الفاظ سنگین ادبی عربیست چیز واقعا است. این کلمه رعوفه یا رعوفه که در این متن دیگر حدیث آیش آمده به باعث سنگی بوده که کنار چاه قرار میدهد خب دیگه بقیهش تقریبا بله. این, این باب دوم، این سومین بومی بار این که رعوفتوش بود سه بومی که از آیش نکن باز دو مرتبه از چند بار از آیشنه هم بپنه چون بهشون اختلافاتیست بیشون سر کرده اون اختلافات رو بله انجام بده اون وقت در این روایتی که احل سنت دارن تو متون ما نیامده در این روایتی که اهل سنت دارن آخرش داره و عمر به ها دو خیلن این طوره بایده ما نداره توی دو طوره بایده آمه آمده پیغمبر امر که ظاهرا زنیر به ها به در برمیگرده پیغمبر دستانی اون چاه رو پر کرده اون به عدد نمیدونم عمر به ها من فکر میکنم بعید باشه چاه رو که مثلا در اون زمان یه عشیره ازش چه استفاده میکنم من احتمال دم عمر به ها و اون ورقه بون و نخو اون مشت و مشاته و اینها که سه در و خونده بود امرو به ها فردوه ند اون درمی شده ایشون ببعر زده در شرحی که داره بعد به بعد از جمله روایاتی که در اینجا ایشان داره در این کتاب حساب بخاری که ایشون به عنوان چیزی نبر کرده تو همین باب ها از ایشون چند باب داره یک بابی داره باب و شرک و سه من موبغاد. این موبغاد اینم داره یک باب دیگه بودشه به ابی هره را از کردم ویروزم خوندیم تو کتاب‌های ما دو سه تا سنت هست و ابو هره اشتنه از موبغاد اینجا بخاری تختیل کرده خودش هم داره نقل سنن داره این بحثیت کاری تختیل این داره اشتن بول موقعات اشتر که بله و سهر درسته؟ لیکن در شرفش هم موجود دو بستن هست رو تمام همینه اشتن بول موقعات به دو تاش از شرک که و سهره. اینجا بقیه چه کرده که چون به اصطلاح این از جمله مطالبی داره چون ما روایت خودم نخوندیم بابی داره بابون حلی و سخرج و سهر خانوان باب رو این داده بابون حلی استقبال رو سه قال قطازه اینجا به صورت کلام رسول الله نیست حدیثه اگر یاد آرومی که در این بحثتی داشتن دارشون باشه در روایتی که داشتن باشه به اون ساهری که بر توبه کردم و از ده دست باشم حضرت هم هن کرد باز بکنم و نبرد این بحث که اگر کسی در صحر بخواد این کار بکنه بکنه جایدیانه این ریشاش این تو سعی بخاری هم بوده این ما نیست و سعی بخاری از قطاده که از تابرینه از سعید ابن مسعیب نمکو هم از تابرینه از و دلگان تابرینه حالا باید تو سعید ابن مسعیب هم رجلون بیدید که او یا اخت شدان امراته این زبتش رو از کم صابه یا اخت شدان یعنی یه وردی چیزی بخواهی که از زنش نفرت پیدا بکنه او یا اخیر را بیدی انا این را ازه یا حل یا حل آره ان... میشه حل بکنه حالا عقل نیست پس این مسئله این که حل جایزه عقل جایزه از اصلا تابعی می شده نه اینکه که فقط صورات ما صادق باشه انا یا حل ان... او یونشر این نشرن من خون در ذواتی که از ذوات ما بود این نشر است زربوند مناله علاج بله این, این نوع علاج نشر یک نوع اساس صحی بوده که برای علاج باشه یا الان جبید ایشو در شعر هستم من یادم ان به این سهره او مس مس مثلا جینگ او وسو کاری کرده ایله لحظه‌الکل نه او یک شکل‌گاه آنها و, انه و خاله‌تو می‌ندا، شن نش می‌پخش کردنه که اگر ما اون مردی در رو هست بیرون یا. حالا من روزی بخوام بعضی به ری یک شرح از خود عبارت اینها. ایو ایح ایو او یونشر قل الله بس به. این از هم عهد تابعی محل کلام بود که باسر حل بکنه عقد نکنه در اکیمی. سید بن سعید گفت لا ایشون جزء فقهای طرئه مدینه است. از در در مدینه هفت و فقيه معروف بودن که زمینهای ارتکاز فقه‌نوینان ایشان ایشونه میگیشن جد مادری امام صادقه قاسم بن محمد نبی علی باقر قاسم پسر محمد بن علی از روز و از جزء امام باقر سلام الله لا بعث به ان ما بهل اصلاح داراخه شوخه شو در اینجا هدف این است که جلو گیری گرفته بشه فم و ما ما یک تفع کلم یونها هیچ کاری انجام نکنه خراب نکنه اما اگه خراب بخواد درست بکنه اشکالی نداره این از همون وقت محل کلام واقع شد که آیا با سه، یا با نشر یا با سه، میتوند اون سری که شده باطل بکنه یا نه باز بعد, بعد بعد حالا قصه چیست اون اتراجه نشره، چون اینا یک چیزای بعدی اقتا بوده در تفکراتشون من چون بعدی نقصه یه هم هستی رو رو میکنم از راه شعبی شعبی از بزرگان اهل سنتی که در کوفه بوده به اصطلاح شراحی بود. چیه؟ شراحی اگر شعبی شعبی خیلی ایسیم چند دفعه قلمه بوده بسیم آمره شعبی شعبی از بزرگان علمای اهل سنته طبعا شعبی از بوده. چون برد از امیر مومینه گاهی از این طرف مرد قال الله برك بن نوشترل عربیه اون اون یعنی اینو قبل از امام صادق علیه السلام الکی اذا و تن لا تباغد ویه ان یخرج الانسان فی موضع عباد یا یخرج الانسان حالا این توی موضع اصال نگم یا ارام باید باشه فیر خود ان و ان شمالی من كل ثم یدوپو یه مدار خاک از این ور این بعد اینه می‌کوبه. و یک را ثم یک تسلو به در اونجا حالا شاید این آب باشه و ذکر ابن بطال این جوراله این جور نشر است و ذکر ابن بطال انی کتاب زهبن منبد این زهبن منبد از یهودی بوده که مسلمان شده عسکرام خیلی این کارها هم در مدینه به این یهود برمیگشت ایشون این جوی باشه انی خود من ورگاز منصدر اخزا سر رو ما الان در زبان فارسی درخت کنار میگیم در زبان فارسی چی مناصری مثل نمیشه جایی که درخت نیازمند زمستان میمیره توی خودستان هست اونجا نبا میگن که نرد لفظ عربی صحیحش نرده و نرده نرد اون میریشه خود درخت کنار میذار درخت بزرگیه درخت کوهنی و غول خیلی بزرگ میشه برگش رو میگیرن می‌کوبن سدر در سدر همونه اصلا سدر همان درخت و اینکه در حرم صدر شده های رو هم که معروفه یه درخت صدر بزرگی بود زوار که می زیر اون استراحت می از گرما که متوکل دستور داد اون صدر رو قطع بکنن مثل این یکی از کارهای متوکل قطع صدره بود و از اون طرف هم خود اهل سنت نوشتن این از در جاید کاره که این حدیث از رسول الله و لعن الله قاتل صدره نمی دونستید چیه تا متوکل این صدره صدقهی که در سدر یا کناری که نزدیک هر مرزد بود بند نه متوکل هم به نظر من متوکل وقت حتی به در تاریخ خلفای سیوتی داره هم میدون لحن رو که میگه چون اونی که دیدن در تاریخ خلقهای سیوتی میگه متوکل چه چه متوکل به این موضوع راشدی ما می لعنش میکنه چون چون خیلی ظاهر الصلاح بود و خیلی هم دست آن و تمام ها رو و جلوه فخرا به و خیلی اقامه امر معروف کرد و شهر دیگه فردا نوشته دو کار بزرگ کرد یکیش اینکه که جریان سیلو شهدا و کوبیدن حرم حضرت یکم خودی زیاد هم خودش زیاد شروع میکرد خودش من صدر این نشهش که میخواد صدمتون اعرض بکنم هفت برگ سه برگیره فیدو قبول بین حجرین دو تا سنگ میگذاش اینها رو خوب میکن میگی سم یعوره بروهو روش آب میگید و یقره و فیح آیت الکرسی اینجا بر قواغل نوشتیم اینها رو قواغل مراد شید سم یه سومن ها سلاث حسابات حساب در دولت عرق شها بگون شاید چاقل باشه شاید قواغل چاقل شاید نماشه چا چاقل باشه صبح یه نه ها حسابات هسته بار هسته هساب بار هسته در جایی به کار برده میشه که خودشان هسته فیصل آمین هسته ما داریم در شبیه سوپی که الان دوست میشه لرزه هسته های هوتیز با سین و همین ها هساب. با های حدتی و سین و با های حدتی و سین و با این به معنای تقریبا زمان ما سوبه. یک قضایی که نه سفت که حالا میگفتن می نه تقریبا مثلا حالا سفت آب هم دار مرق می گفتن خورش مثلا. نه مثلا آبه یک مقدار عزت داره یه نه حس می گفتن. در سفت و یا حثیم مثلا خوند دوا رو محرز بکنه یا حثیم اینها ثلاثه این دسته به قدیم زیاده حثه چیزی شبیه سوپ شبیه سوگمانه نه مثل آب شده شل شده نه مثل طرز خورشه یه چیزی ما بین ما مابینه ما بین ما ما بین مرد این رو اصطلاح خودشون این اصطلاح اون این رو هست فرید فرضین برگ سبز کوبیده که توش آب ریخته این تقریبا حالت سوپمانن در میاد نه نپخته نه پخته, نه پخته. نه که بپزه ده سم یک ترسلو به هم از اون آب بخوره بعد با اون آب خودشو بشوره فهنهو ید هوا انهو کل ما به با این ترتیب این نوشه اصطلاح نوشه این بوده با این ترتیب اون چه که سمسله از بین میره تصور فهمدیم؟ تصور کارش حالا من ان بعد در بابه ان هر چیزی شدیی نروج بهاندازه چون بعده واسه میخوام توضیحش اونجا بزنم. چون ما یختلوبه که ان کل و هو جندون در رجل اضافه به اهلی. اهل. ایشون نوشته که بله باز دو مرتبه ایشون این ربایتی که الان جو خوندیم او یک کتاب به نام طب و نبی مستقری چاپ شده نسبتا مفصله دو دو قدیمی هم هست و هم اصانی در داره کتاب خوبیه البته کتابه چیز به نظر من جمعون جورتا برزشون نوشیم برده فسعلا حمادون شاکر من و من نشه این که باهیت با چهار زویی رزید و با نوشه میگه چیه فلم اهلتما ما قال حالا این نوشه رو خوب دارده حوبر رجل ازالم یکدر علام و جامعه از احله اگه دفت کرده باشیم او دفت هم تأخیر این بود تأخیر این بود که زن کاری میکن که شوهرش با مرزی یعنی میدونه کنه با خودش یعنی تأخیر در حقیقت این بود دقت بکنید نه مجرد اینکه با هیچ زنی کار نکنه علاوه بر اینکه در علا اهل و عتاق ما سواها مشکل ندارم با مشکل نداره با خانوده خودش هم میتونه چه اند المطالب کسی که به در مشیع خود حلمت حزمت رضوان و فسر این جور دیگه‌یه یه مقدار فود بگیره ریزوم بگیره و یکی به اصطلاح تند و فسرن غارتاره حالا من نخونده این فرص داگفر دو طرفش تیز باشه ظاهران احتمالا این باشه یا دو سه دسته داشته باشه این و اون برش تفرک کردی و یه وعه وفی وسط تلی کرده هزمه این من مخاب این را از وقتی من در زمان این جاهلیت الاریش هم بای جاهلیت بوده این به اصطلاح تبر را بگیره وسط اون چوبه ها بگذار وسط اون هیزوم بگذاره و یه وعده فی وسط از سیکل حزمه حزمه بار از هیزوم رو میاد یک بار وسط اون بگذاره بگذار وسط اون فمه یا چی جنارم فی سیکل حزمه آتش رو چند بکنه اون هیزوم رو آتشش بزنه بله حتی اگر ما هم الفاس اون تبر اگر داغ شد استخرجه رو علیم همون داغ که قرم سود از آتش شدیش بیرون و بالا علا هر رنسدی رو برو بکنه و همون فینه هون ید رده تفکراتشون رو در از که که چند جمهت نخوندن که نحله تفکراتون ها ندون میشه هم سهرشون در خود آقوم بوده هم علاقشون در خود بوده این طور در بوده که باید سهرشون بله این راجع تصاديري چون علم الهيات این یه چهارجوری که شبیه سه. و اما نشره فأن هو یگن ما ایام, ایام الربی که از ایام بهار ما صدر علی من ورد المقار از گل‌های صحرایی از گل‌های توی با و ورد بساتین و گل‌های کاشتنی چون در طبغدی به اصطلاح خودشون بوته‌ها رو یا کوهی میدونن یا صحرایی یا بوستانی باقی به اصطلاح باقی این میلش با صحرایی نه که باقی بیشتر آب می‌خوره چون صحرایی که باران خورد دیگه آب خاصی نداره اما بستانی بیشتر آب می‌خوره ولیضا محصولات بستانی داره یه خواص خاصه خودشون که من این عادی بحث بشه گل‌های صحرایی و گل‌هایی که تو باغ اینا جمع بکنه تو میلغی ما فی اناء نجیب که یه دزرت تمیز بیاره این گلها رو انواع گل‌های باغ صحرا رو بیز اونچو رایج الافیه ما ما هنه هر با یک آب به استرابه قوله آب چشم مدنی. آب صاف و خوب چشم سمه یقی میگار کله ما ورد فیر ما قلیه نیفی را یک کم جوش بخوره میدونیم که جوش هرچی بیشتر بشه چون در طبق قدیم این بوده که چه مقدار از مواد رو بخواه استخراج بکنن این مخواه بگه چون ممکنه تو این گل ها گله هایی باشی که خیلی نحف نداشتی جوش کم با قول موزهی ما یکی دو قول بیشتر نخونه چون اگه جوش زیاد بخوره تمام اون مواد رو میکشه بیرون ممکنه به ازش باشه بل یعنی یفیرن یومهل سبر میکنه حتی اضافه تر ما ما که خود... گرم شد ملوو شد به اصطلاح فاتر یعنی به صدا معربای راق رو کار باشه اضافه یعنی ما افازه علی احقیق اون این آب رو خودش بریده فهمه و یبره و نه الله تعالی این که گفته اندره که به قدیم خیلی نسخه در بوداخون نیست حالا من دیگه وارد شرح نسخه نشم این خیلی در بوداخون نیست چون استعمال خارجیست ولی آدتا گل های بیاگونه جمع کردن ممکن که سمی باشد ممکن که تو چیزی مضر باشه چون استعمال داخلی نیست خیلی مذرم این جور چیزی رو جمع کردن این حتیالا سرم نه خود شما هم در باها این کارتون گل ها رو جمع بکنید ب میشونید بعد آبرو بدم بریدید کهیه عفونت های ظهری تا رنگ بعدا روشن میکنه. عفونت های زاروی چلک ج ها, ها. چیزهایی که دردن هست انصافاً پاک میکنه و سااف میکنه. این راجع به کلمه نوشره پس معلوم شد که در همون وقت هم این بحث مطررف شده. که آیا بیشه به کار بردیانم باز دو مرتبه ایشون در صفحه یک بابو سه داره هم بابیش تکرار کرده ایشون بعد ایشون بابی داره این نمونم بیانه سهرم بعدم از دوا به عجوه تل سه عجوه اینو خورمایی سی در مدینه هم هست الان هم هست حالا پیمنده شدیه تکیش کنون خود احضابه هم خیلی خورمای خوشگاه میاد نیست هست در مدینه دیگر این آثار داره. این مقداری از روایات داره خود خرما اصولا به خاطر خصلاتی خسله که داره به لحاظ این نیست که فقط جنبه قضایی داشته باشه جنبه داروی هم داره چون مقدار زیادی از نور خرچید رو در خودش جمع میکنه و جهات متعذید داره اده ای از امراض و اصولا خرما از بین می بره این که خرما شکرهای مختلف پیدا بکنه برمی گله به این بود چیه برگرد اون جن درخت و خصائصی که درخت داره مقداری که درخت میتونه از مور خورشید بگیره و باست عجوه الان هم در مدینه در تبرک عجوه رو زیاده این راجعه یه قسمت از رو میتونه الله